فصل سه شبهای تابستان از خانه همسایه هم صدای موسیقی میآمد. در باغهای نیمه تاریکش، مردان و زنان جوان مثل شبپره ها، بین زمزمه ها و شامپاین و ستارگان رفت آمد میکردند. بعد بعد از ازور که آب بالا میامد میدیدم می, می دیدم که مهمانانش از برجک قایقش شیرجه میزدند یا روی ماسه های داغ ساحلش آفتاب میگرفتند. دو قایق آبهای اش را تنگرامیش شکافتند و تخت اسکیهایی را به دنبال خود روی آبشاری از کف می‌کشیدند. آخر هفتهها روز رویزش بدل به اتوبوسی همگانی می‌شد که از ساعت 9 صبح تا پاسی از نیم شب مهمانها را از شهر می‌آورد و به شهر می‌برد. استیشنش هم مثل سوسک زرد چالاکی در جست و خیز بود تا به همه قطارها برسد. دوشنبه ها هشت خدمتکار و یک باغبان اضافه هم در بینشان بود که از صبح تا شب با زمین شور و کفساب و قیچی و چکش جان می تا خرابی های شب قبل را درست کنند. هر جمعه پنج جعب پرتغال و لیمو از تربار نیویورک می رسید و هر دوشنبه این مرکبات به شکل کپهی بریده شده و بیمغز از در پشتی بیرون می رفت. در آشپزخانه دستگاهی بود که به شرطی که انگشت خدمتکار دویست بار دکمه کوچکی را فشار میداد می توانست ظرف نیم ساعت آب دویست پرتغال را بگیرد. حداقل هر دو هفته یک بار یک دسته سو با چند صد متر پارچه و لامپ و ریسه های رنگیسر می رسیدند تا باغ گتسبی را به یک درخت کریسمس بدل کنند. روی میزهای غذا که با اردفهای پر زرق و برق تزئین شده بود پر بود از ژامبون پخته و ادوی سالات های با نخش های گوناگون و نان شیرینی های به شکل خوک و بوغلمون که گویا بر اثر جادویی به رنگ تلایی تیره درآمده بودند. در سالن اصلی باری با نرده های برنجی اصل علم می کردند که از انواع جین و لیکورپور می شد و البته معجون های مردفگنی که خیلی وقت بود از یاد رفته بودند و بیشتر مهمان های زن سنشان قد نمی داد که فرق آنها را تشخیص بدهند. تا ساعت هفت، ارکستر هم می رسید. نه ارکستری آبکی با چهار پنج ساز، یک ارکستر کامل با ابوها و ترمبونها و ساکسیفونها و سازهای زهی و کورنتها و پیکولوها و و بم دیگر آخرین دسته شناگران هم از ساحل آمدهاند و دارند طبقه بالا لباس می پوشند، ماشین‌های نیویورکی پنج تا پنج تا در کوچه باغ پارک شدند و حالا دیگر تالارها و سالن‌ها و ایوان‌ها پر زرق و برق شدند از رنگ‌های اصلی و موهایی که به مدل‌های عجیب و غریب کوتاه شدند و شال‌هایی که مردم کاستیل در رؤیا هم ندیدند. بار شلوغ و پر رونق یک سر کار میکند و دور چرخاندن کوکتل ها کم کم به بیرون و باغ هم میرسد تا فضا را شادابتر و پرخندهتر کند و به گوشه کنایه‌های سرسری و آشنایی هایی که همان لحظه فراموش میشود و به دیدارهای پر شر و شور زنانی که حتی اسم هم دیگر را هم نمیدانند جان ای بدهد هرچه زمین با کت شدنش از خورشید دور و دورتر می شد، چراخها پر نورتر می شدند و حالا ارکز آهنگ ککتلی سبکی را اجرا می کند و اپرای صداها یک پرده بالاتر می خنده لحظه به لحظه آسانتر می شود و رها از غید و بند بعد از هر کلمه شادی بخشی سرریز می کند. گروهها به سرعت تغییر می کند. با ورود تازه واردین بزرگتر می و به همان سرعتی که از هم پاشیده اند دوباره شکل می گیرند. دختران جوان پرروی هم سر و در مجلس پیدا شده که مدام بین جمع زنهای بزرگتر از خودشان چرخ میزنند و برای لحظه زود زودگذر و لذت بخش گل سرسبد یک گروه میشوند و بعد هیجان زده و سرخوش از این پیروزی نرم نرمک از بین جزر و چهره ها و صداها میخرامند و زیر نوری که مدام تغییر میکند رنگ به رنگ میشوند ناگهان یکی از این کولی ها که لباس رنگارنگ مواجی به تن دارد، کوکتلی را توی هوا می خالیاش خالیش می تا دل و بگیرد و بعد دستهایش را مثل فریسکو حرکت داده و به تنهایی روی سکوی کرباز پوش شروع می کند به سکوتی برقرار می شود و بعد رهبر ارکستر. ریتمش را متناسب با رقص او تغییر می و بمبی از اطلاعات غلط و شایعه به این حاضرین منفجر می شود که او بازیگر بدل گیلداگری در نمایش فالیز است. مهمانی شروع شده است. به نظرم آن شبی که من برای اولین بار به خانه گتس رفتم از معدود مهمانانی بودم که به اینجا دعوت شده بود. خیلی ها دعوت می آمدند. گاهی از سر کسالت در ماشین خود می نشستند و به لانگ آیلند می آمدند و بعد به طریقی آخرش سر از خانه گتسپی در می آوردند. یک وقت آنها به واسطه معرفی کسی که گتسفی را می شناخت پایشان به اینجا باز می شد و بعد خودشان انگار به شهر بازی آمده باشند قواعد را رایت می کردند و بدون اینکه گتسپی را ببینند می آمدند و می رفتند. آنها آنقدر راحت به مهمانی می آمدند که همین راحتی برایشان حکم بلیط ورودی را داشت اما من واقعا دعوت شده بودم اول صبح یک روز شنبه بود که رانندهای با یونیفرمی به رنگ تخم سینه سرخ با یادداشت رسمی غافلگیرکننده کننده از طرف اربابش به خانم آمد و آنقدر رسمی بود که آدم تعجب کرد گتسفی نوشته بود نهایت افتخار من است اگر من آن شب به مهمانی کوچکش بروم این را هم نوشته بود که چندین بار مرا دیده و از خیلی وقت پیش قصد داشته به دیدنم بیاید. اما اوضا و احوال نامناسب مانع این تماس شده است و آخر یادداشت را هم با دستخطی اشرافی امضا کرده بود. جی گتسوی با و شلوار سفید فلانل کمی از هفت گذشته به سمت خانش رفتم و مات و مپود در گرداب آدمهای که اصلا نمی چرخیدم. هرچند که این جا وانجا چهرهی که شاید در قطار دیده بودم توجه را جلب می کرد. بلا فاصله تحت تأثیر تعداد انگلیسی های جوانی قرار گرفتم که این طرف و آن طرف پلاس بودند. همگی خوشلباس، همگی کمی گرسنه و همگی با صداهای آهسته و مسمم در حال حرف زدن با آمریکایی‌های های سرحال پولدار. مطمئن بودم که مشغول معامله اند. سهام یا بیمه ماشین. دست کم خبر داشتم که پول مفتی آن دوربر است که اگر بتوانند چند کلمه درست حرف بزنند میتوانند آن را به چنگ بیاورند. همین که رسیدم سعی کردم میزبانم را پیدا کنم اما دو سه نفری که از آنها سراغش را گرفتم چنان با تعجب به من زل زدند و با چنان جدیتی گفتند نمیدانند که ناخداگاه به سمت میز کوکتل کشیده شدم یعنی تنها جایی که یک مرد تنها میتواند بدون اینکه الاف به نظر برسد کمی وقت صرف کند. از بالا تکلیفی داشتم یک راست می رفتم سراغ یک مستی درست حسابی که جردن بیکر از امارت آمد بیرون و بالای پله های مرمر ایستاد و در حالی که سرش را کمی عقب داده بود دقیق اما بی اتنا نگاهی به باغ انداخت. چه تحویلم می یا نه؟ لازم بود که خودم را به آشنایی بچسبانم تا مجبور نشوم به رهگزرها اظهار دوستی کنم. به طرفش رفتم و بلند گفتم سلام، صدایم تنینی در باق داشت. از پله‌ها که بالا می‌رفتم با حواس‌پرتی گفت فکر میکردم باید اینجا باشی یادم بود که خونه بغلی زندگی خیلی خوشک و رسمی دست داد که یعنی یک دقیقه بعد هوایم را خواهد داشت و به دو دختری گوش داد که لباس زرد مشابهی به تن پایین پله‌ها ایستاده بودند آنها با هم گفتند سلام حیف شد که نبردی منظورشان مسابقه گلفی بود که جردن هفته قبل در مرحله نیمه نهایش باخته بود یکی از آن دختران زردپوش گفت شما ما رو نمی‌شناسید ولی ما یک ماه پیش تو رو همینجا دیدیم جردن گفت و تو این یک ماه موهاتون رو رنگ کردیم؟ جا خوردم چون دخترها یک دفعه غیبشان زد و مخاطب جردن شد ماه زود هنگامی که لابد مثل شام از سبد سورساتی ها در آمده بود جردن دست کشیده و طلایاش را زد زیر بازویم و با هم از پله ها آمدیم پایین و سلانه سلانه گشتی در باغ زدیم تاریک و روشن قروب بود که سینی ککتلی شناور شد سمت ما و سر میزی نشستیم که همان دختران زردپوش با سه مردی که هر سه به اسم آقای منومن من به ما معرفی شدند. جردن از دختر بغل دستیش پرسید شما زیاد به اینجور مهمونی ها دختر حاضر جواب و با اعتماد به نفس جواب داد آخرین بار همون مهمونی بود که شما را دیدم و به سمت رفیقش برگشت و گفت تو هم همینطور نلوسی؟ برای لوسیل هم همینطور بود. لوسیل گفت: «ها دوست دارم بیام چون برام مهم نیست چیکار میکنم. خیلیم بهم خوش میگذره. دفعه قبل که اومدم اینجا پیرنم گیر کرد به سندلی و جر خورد. از ازم اسم آدرس پرسیدن هفته بعدش یک بسته از فروشگاه کرواریه رسید دستم که یک دست لباس مجلسی نو توش بود. جردن پرسید برش داشتی؟ معلومه که برداشتم. میخواستم امشب بپوشمش ولی سرسینش خیلی گشاد بود. بعد درست میشد. آبی نفتی بود با منجوخ های بنفش روشن به قیمت 265 دلار.» دختر دیگر با اشتیاق گفت آدمی که کمچین کاری میکنه لابد یه چیزیش میشه طرف نمیخواد اینجا کوچکترین حرف و حدیثی برای کسی پیش بیاد پرسیدم کی نمیخواد گتسوی یکی به من گفت دخترها و جردن به جلو خم شدند تا راز بین خودشان بماند یکی به من گفت میگن یه زمانی و کشته موجی از وحشت از بالای سرمان گذشت سه آقای من, و من هم به جلو خم شدند و گوش تیز کردند لوسیل با شک و تردید این حرف را رد کرد، فکر نکنم این هم باشه، به نظرم زمان جنگ جاسوس آلمانا بوده یکی از مردها به سر سرتکان داد و به ما اطمینان داد که بله منم اینو شنیدم از مردی که همه چیزشون میدونه و تو آلمان باش بزرگ شده دختر اولی گفت، او نه جور در نمیاد چون زمان جنگ اون تو ارتش آمریکا بوده و از آنجایی که همه حاج و واج نگاهش میکردیم با حیجان ادامه داد وقتی فکر میکنه کسی نگاش نمیکنه نگاش کنید شرط میبندم یکی کشته چشمهایش را ریز کرد و به خود لرزید لوسیل هم لرزید و چشم گرداندیم که ببینیم گتسویان دروبر هست یا نه. گری آدمی بود که دیگران را به خیال پردازی های رومانتیک میانداخت و برای همین همه در موردش پچپچ می کردن. حتی کسانی که در دنیا چیزی نمیدیدند که نیاز به پچپچ کردن داشته باشد. داشتن شام سر شب را سرو می کردن. شام بعدی بعد از نیمه شب سرو می شد و جردن از من دعوت کرد که به جمع آنها ملحق شوم که سمت دیگر باغ دور یک میز پخش شده بودند. سه زوج ازدواج کرده بودند و پسری که اسکورت جردن بود دانشجوی سمجی که اهل مزه پرانیهای لوس بود و فکر می‌کرد که جردن دیریازود کم و بیش تسلیم شخصیتش خواهد شد. برعکس دیگر مهمان ها که دائم ول میچرخیدند، این جمع یک دست موقر و متشخص بود و وظیفه خود میدانست که نماینده ی تفاخر اعیان و اشراف عساقوردادهی اسیل منطقه باشد. ایستگ در حال پز دادن به وست اگ بود و در برابر جلو جلوه‌فروشی‌های رنگارنگ آن گارد می‌گرفت. بعد از نیم ساعت وقت تلف کردن، جردن زیر گوشم گفت: "بوشو بریم، اینجا برای من زیادی با نزاکته." بلند شدیم و جردن توضیح داد که می خواهیم دنبال میزبان بگردیم و گفت که میزبان را ندیده و کمی از این بابت معذب است. پسر دانشجو غمگین و مشکوک سر تکان داد. اول به بار شلوغ سر زدیم اما گادزبی آنجا نبود. جردن از بالای پله ها هم نتوانست پیدایش کند. در ایوان هم نبود. بعد چشممان به دری افتاد که به نظر مهم می آمد و وارد کتابخانه گوتیکی با سقف بلند شدیم که دیوارهایش را با چوب بلوط کندکاری شده انگلیسی قاب گرفته بودند و به نظر میرسید آن را یک جا از یک قصر مخروبه در آن سوی آبها آورده بودند. مرد میان میانسال چهارشانه ای با عینک بزرگی شبیه چشم جغد نیمه مست لبه یک میز بزرگ نشسته بود و داشت با نگاهی نامنظم قفسه های کتاب را نگاه می‌کرد. ما که وارد شدیم، حیجان زده به سمت ما چرخید و سرطاب های جردن را ورانداز کرد و بی هوا پرسید نه، نظرتون چیه؟ در مورد چی؟ دستش را به سمت قفسه کتاب ها و گفت نه، در مورد اینا، لازم نیست شما به خودتون زحمت بدید که بفهمین. من فهمیدم، همهشون واقعیه. واقعی هم. کتاب ها با اشاره سر تعیید کرد و گفت صد درصد واقعی هم، ورق دارم، همه چی، فکر میکردم یه مش مو محکم و خوشگرم، ولی واقعی هم. ورق دارم، ببینید اینجا، الان نشین میدم چون برایش مسلم بود که واقعی بودن آنها را باور نمی کنیم، با شتاب به سمت قفسه کتاب ها رفت و با جلد اول کتاب گفتارهای استدارد برگشت و پیروزمندانه فریاد کشید آ نگاه کنی این یه کتاب چاپ شده کامله دیمونه کننده است این یارو یه پا بلاسکوه شاکاره چه جامعیتی چه رعالیسمی. می میدونسته که تا کجا باید پیش بره از مطلبم چیزی کم نذاشته دیگه چی میخوای چه انتظار بیشتری میشه داشت؟ کتاب رو از من قاپید و تون سر جایش در قفسه گذاشت و زیر لب گفت اگه یه خشت از کتاب خونه برداری همه کتاب خونه فرو میریزه بعد پرسید کسی شما رو آورده یا همینجوری خودتون اومدیم منو یکی آورده بیشتر آدما رو یکی معرفی کرده جردن با روی باز و حواسی جمع در سکوت به اون نگاه می‌کرد یارو ادامه داد من توسط خانومی به نام رزولت اومدم خانم کلود رزولت می‌شناسیدش دیشب همینجا دیدمش الان یه هفته است مستم فکر کردم اگه تو کتابخونه بشینم مستی اثرام بپره پرید؟ به نظرم یک کمی پریده باشه درست نمیشه گفت تازه یه ساعت اومدم اینجا از این کتاب براتون گفتم واقعی این کتابا محکم با او دست دادیم و آمدیم بیرون. در باغ روی سن رقص شروع شده بود مردان مسن دختران جوان را در مداری از دایره های ناموزون هول میدادند و زوج جا افتاده دماغ سر بالا های سن مانده بودند و طبق مد روز در آغوش هم میرقصیدند. تعداد زیادی از دخترهای تنها هم به سبک خاص خود می رقصیدند و برای لحظه ای ارکستر را از کار شاق نواختن بانجو یا سازهای کوبهی خلاص می کردند. با رسیدن نیمه شب، هلهله و شادی اوج گرفته بود. یک خواننده مشهور تنور آوازی ایتالیایی خوان و یک خواننده انگشت نمای کنترالتو آوازی به سبک جاز و در بین اجراها کسانی در سر تا سر باغ مشغول شیرینکاری بودند و صدای انفجار خنده‌های بیدلیل و شاد به آسمان تابستان بلند میشد. یک زوج دغلوی اهل صحنه که معلوم شد همان زرد زردپوش هستند بالماسکه‌ی بچگانه ای اجرا کردند و در گیلاسهایی که کمی بزرگتر از کاسه‌ی انگشت‌شوری بود شامپاین سرو شد ماه بالاتر آمده بود و در تنگه به شکل یک مسلس از پولک‌های های نقره شناور بود و با صدای چک چک خوشک و حلب مانند بانجه روی چمن میلرزید. هنوز با جردن بیکر بودم. با مردی هم سال خودم سر میزی نشسته بودیم و دخترک ریز نقش پر سر و صدایی که با کمترین اشاره از خند ریسه میرفت. دیگر سر کیف آمده بودم. دوتا از آن کاسه ها شامپاین زده بودم و ی نمایش جلوی چشمم به چیزی مهم، اساسی و امیغ بدل شده بود. در وقفی میان نمایش، مرد نگاهی به من کرد و لبخند زد. خیلی معدبانه پرسید. قیافتتون خیلی آشناست. شما تو جنگ تو لشکر اول نبودین؟ آه، بودم. تو لشکر بیست و هشت نظام. من تا جوان 1911 تو لشکر 16 بودم، میدونستم شما شماره یه جایی دیدم. کمی با هم در مورد روستاهای گلالود و ابری فرانسه حرف زدیم. بیشک مال همین دور و اطراف بود. چون گفت تازه یک هواپیمای آبنشین خریده که فردا صبح میخواهد آزمایشش کند. رفیق قدیمی می با من بیایید؟ درست کنار ساحل لبه تنگه. چه ساعتی؟ هر وقت برای شما مناسبه. نکه زبانم بود که بپرسم اسم شما چیست که جردن نگاهی به اطراف انداخت و لبخند زد حالا دیگه خوش میگذره آها خیلی بهتر شده باز به سمت آشنای جدیدم برگشتم و گفتم این مهمونی خیلی برام غیرعادیه حتی میزبانم ندیدم من همین بغل زندگی میکنم و با دستم به سمت پرچینهای نامعلومی در دور دست اشاره کردم. و این یارو گتسوی از طریق شفرش برام دعوتنامه فرستاد یک لحظه طوری نگاه هم کرد که انگار نمی چه میگویم. بعد یک بار گفت من گتسپی با گفتم. چی؟ آو معذرت میخوام. خواهم. بکردم میدونی رفیق قدیمی. متاسفانه من زیاد میزبان خوبی نیستم. لبخندی از سر هم دردی نه، شایدم بیشتر از همدردی به من زد. لبخندش؟ از آن دست لبخندهای کمیابی بود که موجی از آسایش خاطر، در آن پیداست از آن لبخند ها که ممکن است چهار پنج بار بیشتر در طول زندگیت با آنها بر نخوری. لبخندی که در یک لحظه به کل دنیای بیکران زده می شود و بعد با طرفداری ای متمرکز می شود روی تو لبخندی که تا جایی که می درک شوی درکت می کرد و باورت می کرد آنطور که میخواستی خودت را باور داشته باشی و به تو اطمینان میداد که درست همان تصویری که در بهترین حالت میخواستی از خودت ارائه بدهی را از تو دارد. درست در همین لحظه لبخند محو شد و من داشتم به جوان خوشه کل و برازنده ای نگاه میکردم که سی و یکی دو ساله بود و از امد جوری مبادی آداب حرف میزد که چیزی تا مسخره شدنش نمانده بود. درست قبل از اینکه خودش را معرفی کند، به نظرم رسیده بود که سعی دارد کلمات را با دقت زیاد انتخاب کند. درست همان وقتی که آقای گادسی خودش را معرفی کرد، یک خدمتکار به طرفش دوید و گفت که از شیکاگو پشت خط تلفنند. او با تعظیم کوچک به تک تک ما معذرت خواهی کرد و به من گفت: رفیق قدیمی، اگه چیزی خواستی کافی لب تار کنی. منو ببخشید. بازم میام پیشتون. وقتی که رفت به سرعت به سمت جردن برگشتم تا او رو از حیرتی که کردم مطمئن کنم. انتظار داشتم آقای گتسپی مرد میان سال چاب و چله و سرخ روی باشد. از جردن پرسیدم کی بود؟ میشناختیش؟ یه نفر به اسم گتسپی همین. منظورم اینه که کجاییه؟ چیکار کار میکنه؟ با لبخند خسته گفت، حالا تو از موضوع جا خوردی؟ خب، یه بار به من گفت که تو آکسفورد درس خونده در ذهنم سابقه مپمی از گتسبی در حال شکل گرفتن بود که حرف بعدی جردن به بادش داد ولی من باورم نمیشه چرا؟ با تکید گفت نمیدونم ولی حس میکنم پاشو هم اونجا نزشته چیزی در صدای جردن بود که آدم را یاد آن دختری میانداخ که گفته بود فکر کنم یه نفر کشته و تاثیر این لحن بر من تحریک کنجکاوی بود اگر به من میگفتند که گتسلی از باطلاقهای لوئیزیانا یا از ته ایست ساید نیویورک پیدایش شده قبول میکردم. این را میشد قبول کرد اما در عالم بی تجربه شهرستانی هم نمی نمیتوانستم قبول کنم که مردی جوان از غیب سر و کلش پیدا شود و در تنگه لانگ آیلند قصر بخرد جردن با همان علاقی که شهری ها به موضوعات ملموس نشان می‌دهند بحث را عوض کرد به هر حال مهمونی‌های بزرگ می‌گیره و منم از مهمونی‌های بزرگ خوشم میاد مهمونی های بزرگ خودمونی ترن آدم تو ممونای کوچیک خلوت نداره. یک مرتبه صدای قررش تبل باس بلند شد و صدای رهبر ارکستر بالاتر از صدای همهمه همه باغ به گوش رسید خانم ها آقایان به تقاضای آقای گسبری میخوایم آخرین اثر آقای ولادیمیر تاستوف رو براتون بزنیم که در ماه می تو تالار کارنگی سر و صدای زیادی به پا کرد. اگر روزنامه ها رو خونده باشید میدونید که دارم و چرف می بعد. لبخند ملی زد و اضافه کرد حسابی <متحدث> <متحدث> <سه> سر و صدا کرد صدای خنده ی همه بلند شد و او حرفش را اینطور تمام کرد اسم این قطعه جز تاریخ جهان اثر ولد میر تاستوفه از آهنگ تاستوف چیزی نفهمیدم چون همین که قطعه را شروع کردم چشمم به گتسفی افتاد که تنها روی پله های مرمر ایستاده بود و رضایتمندانه از یک گروه به گروه دیگر چشمی چرخاند برنزش صورتش را جذاب و گیرا کرده بود و به نظر می رسید موهای کوتاه و مرتبش هر روز اصلاح می شود. نمی توانستم هیچ چیز شومی در او پیدا کنم. با خودم گفتم شاید مشروب نخوردنش او را از مهمانهایش متمایز کرده است چون هرقدر مستی و گرمی مجلس بالاتر میرفت رفتار گتسبی به نظر منطقی تر می آمد. وقتی آهنگ جاز تاریخ جهان تمام شد دخترهای لوس و شنگول سرشان را گرم و عاشقانه روی شانه مردان می‌گذاشتند و دخترانی بازیگوش به عقب قش می‌کردند در آغوش مردان یا حتی جمع چون مطمئن بودند که یکی از میان جمع آغوشش را برای آنها باز می‌کند اما نه هیچ دختری در بغل گادزبی قش می‌کرد و نه هیچ موی آرایش شدهی روی شانه‌اش آرام میگرفت و همچنین هیچ آواز جمعی خوانده نمیشد که یک سرش گتسپی باشد یک دفعه خدمتکار گتسبی کنار ما سبز شد و گفت: خیلی ببخشید، شما خانم بیکر هستید؟ اوز میخوام آقای گتسبی میخواد با شما تنها صحبت کنه. جردن با تعجب گفت: با من؟ بله خانم. جردن آرام بلند شد و در حالی که ابروهایش را از تعجب بالا انداخته بود، نگاهی به من انداخت و دنبال خدمتکار راه افتاد به سمت امارت به لباس شبش نگاه می کردم که آن را مثل لباسی ورزشی پوشیده بود، هرچند او همه لباسهایش را مثل لباس ورزشی می پوشید، در حرکاتش نشاط خاصی بود، انگار راه رفتن را از اول صبحهای با تراوت و تر و گلف زمین های یاد گرفته باشد،